وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ جَعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِي أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَانِ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وآله وصحبه أجمعين أما بعد فازلة توحيد رو دوشتين بات الجناية الشرك رو هم دوشتين بهشبر مواجب و جرم شرک اینه که ما از بهش محروم بشیم این جرمی هست که خداوند نوشته و گذاشته یکی از جنایت های بزرگ که انسان در حق خودش میکنه نه در حق دیگر آن. خودش را همجوار ابو جهل و ابو و نمرود و فرعون و دیگر سران شرق قرار میده که با اونها در جهنم تا عبد الدهر بسوزد و اونجا عذاب ببیند این عقوبت خداونده این عذاب خداوند، این خشم خداوند بر کسانی که خداوند را یکتا قرار ندادند در عبادتشون، در طاعتشون کسانی که حق توحید خدا را به جان زیر پا گذاشتن و برای خداوند شریک قرار دادن جزای اونها این است که عذاب ببینند و شکنجه ببینند در جهنم خداوند. این عقوبتی بود که ما در درس گذشته توضیح دادیم به خداوند هم درباره شرک میگوید این عظیم شرک ظلم بسیار بزرگی هست بعد از اینکه ما بحث شرک رو داشتیم حال نمونه هایی از شرک رو بخواهیم بررسی کنیم شرک در چی چیز در چه چی مواردی واقع می شود ما اگر انواع توحید و خداشناسی را بفهمیم اونجا هست که می تشخیص بدیم که چه موقع ما مشرک میشیم و چه موقع از ما شرک سر میزنه شرک یک جنبهش برمیگرده بر میگرده به توحید علمی به بحث شناخت خداوند معرفت و شناخت خدا که بهش میگن معرفت و اثبات بحث اثبات وجود خداست و بحث اینکه خداوند خالقه و رازقه و مالکه اگر کسی خداوند در ملکش یا رزق روزیش یا در خالقیتش کسی برا شریک قرار بدیم این جرم و این جنایت شریق قرار دادن غیر خداوند با خداوند در ربوبیتش و در خالقیتش که دیگه هیچ ظلمی برات از این نیست شریق قرار دادن خداوند در توحید ربوبیت در توحید علمی توحید علمی یعنی یکتا قرار دادن خداوند در افعالش یعنی خداوند در اون خلقش را یکتا قرار بدید فقط خداوند آفریننده هست این رو میگن توحید علمی یا توحید ربوبیت ما باید خداوند را در این یکتا قرار بدیم. اگر بگیم خالق جز خداوند هست، اگر بگیم خدا رزاقی جز خداوند هست، یا رزق روزی رسالی جز خداوند هست، اونجا جا هست که برای خداوند در افعال شریک قائل شدیم و دچار شرکت شرک اکبر شدیم. این برمیگرده به یکتا قرار دادن خداوند در افعال خودش. اما توشید عملی، اینه که خداوند را در افعال ما خودمون، در افعال بندگان، ما یک تا قرار بدیم خدا را در اون یعنی ما را ما خداوند را در, در اعمالمون یک تا قرار بدیم در افعالی که ازمون خواسته یعنی اون عبادت و نمازی که میخونیم اون روزی که میگیریم فقط برای خدا انجام بدیم توحید علمی یک تا قرار دادن خداوند بود در افعال خودش توحید عملی یک تا قرار دادن خداوند یک تا قرار دادن خداوند بود در افعال بندگان فعل بنده فعل بنده را طوری قرار بدیم که فقط خالصانه برای خدا باشه همونطور که خداوند میگوید ال دین الدین الخالص یعنی عمل صالح عبادت خالص فقط برای خداونده و غیر از عمل خالص عمل، عملی که خالصانه برای خدا باشه خداوند از بنده نمیپذیره پس انسان باید اعمالش خالصانه برای خداوند یکتا باشه نباید خداوند را در اعمالی که ما براش انجام میدیم خداوند را شریق قرار بدیم حال این اعمالی که ما باید خالصانه برای خدا انجام بدیم این اعمال چه نوع اعمالی هستن چه نوع اعمالی هست اگر ما انجام اگر سوار ماشین شدیم آیا اینم جز اعماله آیا رفتن اومدن لباس پوشیدن جز اعماله یا اینکه نه عمل خاصی منظور هست اون افعالی که خاص هست که اگر, اگر برای خداوند شریک در اون قرار دادیم، اونجا هست که مؤاخذه میشیم و دچار شرک اکبر شیدید بله اون اعمال اعمال خاصی هست أعمالك که خداوند ما برای خودش انجام بدیم نماز را خاصه برای خودش وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله احد نماز را برای خودش گذاشته که ما فقط برای خودش بخونين دعارا را برای خودش گذاشته ما فقط از خودش بخواهیم ولا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان اگر بندگان از من پرسیدن بگو من نزدیکم هر از من بخواهن استجابت میکنم دعا بحث نزاکردن بحث قسم خوردن اینها عبادت هایی هست که ما فقط برای خدا باید انجام بدیم اگر خداوند را در اون اعمال شریق قرار دادیم توحیدمون رو پایمال کردیم اون یک تا رو پایمال کردیم خداشناسی بر بیگرده به توحید علمی که باید خداوند را در افعالش یک تا قرار بدیم و یک تا در توحید عملی هست که ما در اعمالی که خدا ازمون خواسته ما خداوند را درش قرار بدیم حال چونگونی ما میفهمیم که این عمل مورد پسند خداوند هست و خداوند ازش راضی هست هر عبادتی هر چیزی که خداوند بر زبان الله صلی الله علیه یا در قرآن از من خواسته که ما انجام بدیم اون چیز میشه عبادت خداوند میگو اقیم الصلاه، نماز را برپا بدارید خب نماز چیز خوبیه خداوند لازمه محبتش که گفتیم از عبادت های قلبی هست این میدونه که ما از رسول الله صلی الله علیه و سلام پیروی نماز بخونیم رسول الله صلی الله علیه و سلم نماز میخوندن رسول الله صلی الله علیه و سلام میفهماید صلوا کما اصلي نماز بخونیم چنانچه من نماز میخونم خداوند هم در قران میگوید قل ان كنتم تحبون الله فتبعون يحبكم الله قل ان كنتم تحبون الله اگر واقعا محبت الله را دارید شما برخلاف مشرکین ادعا دارید که الله رب معبودات دیگر و چیز کثار دیگر دوست دارید پس شماها اتباع پیرایی از رسول الله صلی الله علیه و سلم بگید. نماز بخونید چنانچه رسول الله صلی الله محبت خدا داشته باشید چنانچه رسول الله صلی الله علیه و داشت چنانچه روزه روز بگیرید چنانچه او حج میکرد شما حج انجام میدید خدا عنی مناسک حج حجت ازمن از من بگیرید چنان ذبح قربانی بکنید که رسول الله علیه و انجام میداد چنان قسم بخورید که رسول الله صلی الله علیه و قسم میخورد اگر غیر از این شما انجام دادید دیگه بفهمی که رضایت خداوند درش نیست بلکه خشم خداونده چون خداوند از چی اعلان رضایت کرده از اتباع از رسول از پیروی از رسول الله صلی الله علیه و سلم قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم خداوند شما رو دوست می‌داره اگه از رسول الله صلی الله علیه و سلم پیروی کردید و گناهان شما هم در اضای اتباع شما پیربی شما از رسول الله صلی الله علیه وسلم خداوند گناهان شما را میبخشه و میامرزه ما بالفرض مثال از جمل عبادت هایی که خداوند در قرآن ازش یاد کرده از صفات مؤمنان که مثلا فرض خداوند متخسته ستایششون کرده از کارهایی که فقط برای خداوند انجام میده، میدن مثلا خداوند در قرآن میگوید یفونه بالنظر و یا خافونه کان شبره مستقیره مؤمنین اصفتشون اینه که به نظرشون ایفا میکنن اون نظری که برای خدا بستن اگر منیزم شفا یافت من قربانی میکنم یا من روزه میگیرم نظرشون رو ایفا میکنن ایفای نز، یعنی انجام دادن اون نذ اون تعهدی که ما بر دوش خودمون گرفتیم تعهدی که گرفتیم اون تعهد خودمون رو انجام بدیم پای مالش نکنیم این نذ عبادته واجبه بر ما چون ما خودمون بر خودمون واجب کردیم پس نظر کردن یک عبادته. نباید نظره غیر خداوند پس ببندی. چون خداوند اعلان رضایت کرده. گفته که اونها اصفت مؤمنین که نظره به خدا میبندن. حالا اگر کسی نظر به ای بس، به ولی حکم بس، حکمشیه. اینجا هست که دچار شرک شده و شعائر خداوند، اون شعائر و اون دینی که خداوند خاصه، خالصانه، ما برای خودش انجام بدیم الا الله دین خالص، دینی که خالصانه برای خداوند بد باشه اون دین خالص را ما پایمال کردیم و این خلاف تقوا هست این خلاف ترس از خداوند خداوند در قرآن میگوید ذالک و من يعظم شعائر الله فانها من تقوى کسانی که شعائر خدا دین خدا تعظیم میکنن چنانچه خدا خواسته انجام میدن بدونن که این کارشون از شونه پس اگر کارشون بر خلاف این باشه، دیگه آنها متقی نیستن. آنها دیگه ترس از خداوند ندارن. همچنین زب ش به غیر خداوند قسم قربانی میکنه به غیر خداوند زب کردن یه نوع یعنی عبادت است. در قرآن میگوید فصل لربک رابی که خطاب رسول الله صلی الله علیه و سلم فصل لربک رابی به هر واردگارت نماز بخون. نماد را فقط برای خدا انجام بده ونحر قربانی هم فقط برای خدا انجام بده نح کن قربانی کن فصلل ربک ونحر یعنی نماد را برای خدا بخون و قربانیت هم برای خدا قرار بده اگر کسی قربانی کرد برای مردی برای بوتی برای هر شخصی اگر قربانی کرد اون شخص دوچار شرک اکبر شده و چنانچه در حدیث داریم رسول الله صلی الله علیه وسلم لعن فرمودن کسی که ذبح بکنه برای غیر خدا خداوند رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما لعن الله من ذبح لغیر الله خدا لعنت بکنه کسی که ذبح میکنه قربانی میکنه قربانی میکنه برای غیر خداوند ذبح کردن به غیر خداوند کسی بره کنار زیارتی کنار قبر ولی قرار بوتی زبخ بکنه به غیر خداوند در این عبادتی که فقط برای خداوند باشه اون عبادت مقدسی که ابراهیم خلیل الرحمن اومد فرزند خودش اسماعیر را برای خداوند قربانی بکنه این عبادتی که خداوند اعلان خوشنودی کرد از ابراهیم به خاطر این کارش فداکاریش که فرزندش رو اومد قربانی بکنه شخصی بیاد در قربانیش برای خداوند شریک قرار بده در این فعل خودش این شخص دوچار شرک شده در توحید عملی در افعال بنده اومده برای خداوند در فعلش شریک قرار ده اون فعلی که خداوند خواسته برای خودش انجام بده نه افعال گفتیم خداوند از افعال دنیا نخواست نخواسته که ما سوار الاغ بشیم سوار ماشین بشیم این امر را برای برای خودمون رها کرده هر کاری دوست داشتید در امر دنیامون انجام بدیم همونطور که رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرما انتم اعلو با امور دنیا کو امر تو خودتون بهتر میدونی ولی بحث از آخرت که میشه خدا هست که تعیین تکلیف میکنه چه عملی در آخرت به درد میخوره چه عملی در آخرت به درد نمیخوره بحثمون در اعمالی هست که روز قیامت به درد میخوره و بهش رو بر ما واجب میکنه ما در این مورد داریم صحبت میکنیم به خاطر همین خداوند میگه رسول الله صلى الله عليه وسلم داريم قل إن صلاتي ونسكي ومحيايا ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل إن صلاتي ونسكي نماز من بقى محمد نماز من ونسكي نسك من يعني قرباني فسرين مفسرين بيقان بحث همون بحث قرباني هاتي و بحث همون حج انك الإنسان فقط بريخ خضاباً أنجام قل ان صلاتي و ومحيياي ومماتي قسمت اول نماز و ذبح قربان و قربانی قسمت دوم مردن من و زندگانی من دست کی دست خداوند باری تعالی رب العالمین است قل ان صلاتي و نسكي ومحيياي و مماتي لله رب العالمين برای خداوند یکتاست قسمت اول یک تا قرار دادن خداوند بود در اعمال بنده نماز و ذبح قسمت دوم مردن من و, زن و زنده کردن من و زندگی من زندگانی من دست که دست خداوند دست خداوند مالک اون کسی که مالک منه اون کسی که خالق منه یک تا قرار دادن خداوند در توحید علمی در افعال خداوند اعتقاد باید داشته باشیم که مرگ ما زندگی ما نفع زرر ما دست قدرت خداوند یعنی به دست خداوند که خداوند هرگاه که بخواد ما را می میراند و هرگاه که بخواد بنده ای را خلق میکنه و میآفرینه این باید بهش اعتقاد بدیم همانطور که ما اعتقاد داریم خداوندمون یکتا هست خداوندمون خالق و رزاقه همانطور هم باید خداوند رو یکتا قرار بدیم در اعمالمون در نمازمون در ذبحمون قل ان و نسکی نماز من من برای کیه؟ برای خداوند الله رب العالمین همونطور که من اعتقاد دارم کسی که مرا آفریده خداوند بری تعالا هست و کسی که مرا می‌میانه خداوند بری تعالا هست من همونطور که این اعتقاد دارم باید اونم اعتقاد داشته باشم. پس خداوند را باید در افعال خودش و در افعال خودمون یکتا قرار بدیم. اگر این کار نکردیم، اون جا هست که برای خداوند شر قرار دادیم. به خاطر همین، اگر کسی بیاد خصوصا در توحید در توحید علمی شرکی را, را به خدا بیاره مثلا اعتقاد ما داریم که خداوند عالم غیبه علمی که خدا داره بنده ای نداره خداوند از غیب باخبر از آینده باخبره اگر ما این اعتقاد اعتقادی در بنده ای داشته باشیم بیایم بگیم که بنده هم میدانه اینجا هست که ما در در ربوبیت خداوند برای خداوند شریک قرار دادیم رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماین من اتکاهنن او عرافن فقد کفر بما اونزل علی محمد صلی الله علیه وسلم کسی نزد کاهن بیاد تکه هم بکنه از آینده خبر بده یا عراف که از غیب خبر بده اون شخص اگر کسی بره نزد اینها کافر شده بر آنچه که بر من نازل شده اینجا شرک وورده کسی جز خداوند از آینده با خبر نیست حالا شخصی شاید بگه خب اینا که حرف راستی می زنن. بله اینها با جن در رابطه هستند اینها جن تابعشون نمیشه مگر اینکه برای اونها ذبح قربانی انجام بدن بحث ما این نیست بحث ما از اون علمی گذشته هست نیست اونها رسول الله صلی الله علیه و میفرمایند استراق سم میکنن روی کوله های های هم, هم سوارن یک چیزی را بشنوند از زبان فرشتگان که خداوند حکم کرده سپس بر اون یک حق که شنیدن 99 تا دروغ اضافه میکنن بعد به ما تحویل میدن بله شاید یک درصد حرفشون درست باشه ولی کل اگر ما تسلیقشون بکنیم باورشون بکنیم اون جادوگر اون کاهن اون عراف اگر باورشون بکنیم اون کسی که توی فنجون میخونه کف دست میخونه اگر ما باورشون داشته باشیم کافر شدیم به خداوند در علم کافر شدیم به خداوند در ربوبیتش در توحید علمیش در آن چیزی که خدا من را باید یک تا قرار بدیم بله سحر و جادو و چیزهای دیگر که جادوگران انجام میدن توسط جنیان اگر انسانی بره نزد اونها اونجا هست که اون شخص با رفتن پیش اونها داره تایید میکنه که اونها به نحوی از غیب باخبرن و خداوندم از جنایت آنها و از این که کاری دست اونها نیست دست جادوگر کاری نمیتونه انجام بده مگر به اذن خداوند خداوند میگه ما هم به دارین من احد به باذن الله بدونی که اونها هم کاری نمیتونن انجام بدن مگر به اذن خدا خدا خواسته که این فتنه و این امتحان باشه که اون جادوگر این چیزین کارها رو انجام بده تا اینکه ما در این فتنه و در این ابتلا بیافتیم پس ما این امتحان رو باید درست ازش بر بیان. نباید رو بیاریم به سمت جادوگر به سمت ساحر و باورشون بکنیم در اون اموری که ادعاش میکنن از علم غیر اگر این کارو کردیم در علمی که خداوند داره داریم در اون علم برای خداوند شریک قائل میشیم اون خداوندی که میگیم یک تاس در خلقش در آفرینشش در علمش در همه چیزی صفاتی که داره خداوند یک تاس نباید در اون چیزها خداوند را به خداوند شریک قرار بدیم و همونطور که در افعال خودش نباید شریکی براش قرار بدیم در افعال خودمون از نماز و روزه و زبح و دیگر عبادتو هم نباید برای خداوند بند شریکی قرار بدیم و آخر دعوان الحمد لله رب العالمین و صل الله علی محمد و علی آل محمد